در مورد ختمه ها که دیروز صحبت کردیم اما مثل که بازتاب خوبی برای خیلی ها نداشته خیلی ناراحت شدند شدن و بعد از این دیروز برای بعض مسائل گفتن که احساسی نباید برخورد کنیم و خیلی بعضی که خیلی کلمات تندی رو کار بردن ها مفتی چلعی که میگفتن مفتی چار میگفتن حالا چلعی شدیم و یا ده روزی و هفته ای شدیم منشاللہ که همه, همه سامین کارشناس علوم شعری هستند و ما هم داریم طلب امتحان پس میرین شو همه منشاللہ هستند و عجب جرعتی دارن که در تمام علوم شعری نظر میدن در فضاهای مجازی از خودشو نظر میدن قافل از این که اون چیزی داری ما میگیم اینجا فرشته ها زامینه داره می نویسن و یه روزی بایق و گفته ها باشیم حالا وقتی که حدیثی خونده میشه بل اگر من اشتباهم بگم انسانم اشتباه میکنن الا ان کسی از ست معصوم نیست اگر اشتباهم گفته باشم با وقتی حدیث خوندم در مقابل حدیث اگر اشتباهم گفته ما چون استدلالم حدیث بوده یک عذر به من می میرسه आवाज شما در مقابل حدیث حق ندارید که موضع بگیرید بخاطر احساسات خودتان که چرا اینجوری شد و خلاف احساس ما حرفی بیرون اومد حالا توضیح دواره مفصلتر تر میدم که خود حالا خوب مشکلی چون که باید بدونید حالا پذیرش کلاما در شما واجب نیست اجوار نیست اکراه نیست نپذیرید اما در مقابل آمال خود تا که مسئول هستید من هم در, در مقابل گفتها مسئولم چیز دارم میگم و شما هم در مقابل آمال تا مسئولید در بورد جلسات جلسات ختم خطمین ها چگونه هست اول دوتا فتوه میگم و توضیح میدم. مولانا محمد عمر سربازی که از علمای درجه یک بالاترین عالم کشور شما بود فتوه این است که بدعت هست حالا بری از جرفتی بیرو در همین کتاب روشی دمی درم این فتاوا فروخته میشه بازش کنیم نگاهش کنید، از سان هم بی بی بی چی میگن بعد از اون مولانا مفتی محمد شفی عثمانی رحمه الله که والد گرامی مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مصنف تفسیر معارف القرآن در کتاب جواهر الفیقل اونجا میفرمین شعب زنداری ختم شود مختصر اگر بیانی شد بعد از اون دیگه مشکل ذکر و عبادت و رو و استغفار باشید. مخت... اگر کسی مختصر واضی کرد سخرانی کرد بله اما با اگمانده شب را اینجوری باید میبذارانید. اینها دو تا فتوه از دو تا عالم هر تا مفسر. مولانه محمد عمر سربازی مفسره تبدیل و فرغان و و مفتی محمد شفیعی عثمانی هم مفسر هست که معارف القرآن رو حالا در مورد خود اینها نگاه در احکام اینو دیروز کامل توضیح دادم. بعضی میگن که دو پهلو صحبت نکن الله میدونه که من دنبال هیچ دو پحلوی هم نیستم و این دو دو اخلاق من نیست اگر چیزی باشه قاکعا رو چیزی خود را میگم ولو که به مزاج من هم درست در نهایت میبینید که خیلی هم اینجا عصبانی شدند در خیلی جواب ها چون من این خود اخلاق من هست چیزی که باشه درستش میگم حالا قاتانی هم میگم چون اگر دلیل داشته باشم اگر نداشته باشم خود ندارم سکوت میکنم هم در مقابل حجت و دلیل دیگه نباید کوتوام یعنی اینجور که دوباره دو پهلو صحبت کرده یعنی چی؟ این هر حرف خوبی نیست نگوتو پهلو همی داری منو بطه همی که دو پهلو میگه که اما من معتقد نیستم که خطم گرفته بیشه از یک طرف اینجوری میگه از داره همون چیزی برای من نوشته همیش دو پحلو هم کل کلامش تا داره گو اینجوری میگه کو اینجوری میگه تا که این پیان بزرگی رو نویشته حالا این مسئله اول بدونید که هرگاه چیزی در شریعت مباح باشه حلال باشه و او را لازم بگیرید واجب بدون این بدعت هست این اصول احل سنت هست بری ده از علاوه اگر چیزی که جائز بود و چیز جائز را لازم گرفتن این چیز میشه بدعت. باید ترکی میشه اما در این که اول غق میشه چگونه هست دلیلش کجا هست دلیلش هم میگم. دلیل اول این است که داخل صحیح بخاری باب الاعتکاف زمانی که ازواج مطهرات در مسجد النبی اعتکاف کردند حضرت آیش صدیقه رضی الله تعالی عنها اجازه گرفت نبی مکررا اجازه دادند حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها اجازه گرفتند اجازه فرمودند حضرت زیدر اجازه نگرفت خیمه رو خیم زد خیمه ها زده شدند حوین آل بیروی رادنا همین اس نیکی تو می نیکی میگردید دو نیکی میگردید چرا از تو نبی کریم در لازم میگیرن نفر باد و ما نفر باد و ما ازواج مطهره همین اس نیکی این نیکی نیست انداشت لازم دین میگرفتن بعد از اون خود ذات اقدس نبی کریم صلی الله علیه و سلام خودش را شکست یعنی بخاری نگاه بکنی خود نبی کریم اعتکاف ننشست چون داشته لازم میگرفتن چرا چون بر خانم اعتقال سنت معاکده نیست برای آقایان در مسجد اعتقال سنت معاکده هست برای خانم جایده مستحبی اما مانند آقایان نیست نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اعتقال خود را شکست تا بدون انطلاق این لازم نیست البخاری بخاری نگاه وقتی ما میگیم که گاه باید ترکیبیشه تا که مردم فکر نکنن این جز واجبات رمزانه از احکام رمضان نبی مکرم اسلام اعتکاف خود را شکسته بادا قضا گرفت قضا گرفت اما اُس سال شکستش این دلیلی نہیں این چی داخل بخاری اومده ہاں بہرحال این چیز و ایک دیگه هم بیان نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تراویث شب بیشتر نخون چرا بیشتر نخون فرمودن که لازم بر شما نشه اگر من لازم بگیرم الله واجبش میکنه بعدا که صحابه کرام آن عملی کردند و سنت ما اما بعضی از امور را خود نبی مکرم اسلام این اینکه اون اعتقاد مردم به وجود نره و حق واجب نشه خیلی از احکامو ترک میکند ترک میکرد مسئله بعدی مسئله اختلاف وقتی اختلاف بیاد و آقایی که داره به من میگه دو پهلو صحبت میکنی، داره در یه قوی شرعی الهی رو بیان میکنه. اگر هم شما مخالف رئیش ما باشه، اما بد اخلاقی نباید باشه. دارن در فضای مجازی لعنت میکنن هم دیگر رو، دارن بد بیرو هم میگه هم دیگر رو. در آیا آی اخلاق همینه، آیا شرمت انسانی همینه، و خاطر یک جلسه جائز مباه هم دیگر تخریب میکنی، در حالی که نبی مکرم مسلم فرمودن. در روایت ابن ماجه می آید که اگر حرمت مسلمان از تخریب بیت الله بیشتره بیت الله قابل مقایسته مقایسته بیتونی حرمت مسلمان آوروی مسلمان خون مسلمان از حرمت بیت الله تس حالا ما داری میکنیم داری هم دیگو تخریم میکنیم به علماء اتهام میزنیم خیلی از علماء از سوال میرن چقدر دارم تخریب علشدو شده وقتی مسئله اختلاف بیاد در صورت مسئله اختلاف باید ترک بیشه دلیل این حدیث دیگر می کن از صحیح بخاری حدیث صحیح بخاری که در بعد بنیان کعبه آخر جرد اول بعد اختاب المناقب بنیان کعبه هست بنیان کعبه این صورت صورتی ای که نبی مکرم اسلام فرمودم به حضرت آیشه صدیق رضی اللہ تعالی انها که من می خواهم که بیت الله رو بر بنایی ابراهیمی بنابطینا این بیت الله چون میبینی یک نیمداری بیرون است این بنای قریشه بیت الله در بنای ابراهیم بستتیل شکلی بوده و درها به زمین چسبیده بودن و سخت هم نداشته فرموده من میخم بیت الله رو بیان کل این نیمداری وارد بیت الله بشه درها رو به زمین بچسبانم دو در بزارن ورودی و خروجی اما اما حالا این قومتو تازی مس اگر من این کار انجام بده، اونها فکر میکنند میکنن که یه چیز جدید در بیت الله آورده بدگومان میشن. به خاطر اون بدگمانی که اینها در این ذهن اینها میآید این کار انجام نمیدن حتی تعمیر بیت الله را ذات اقدس نبی کریم به خاطر همین سوی برگاشته ها سوی تفاهمها ترکش کرده حالا این جلسه ما مهمتره تعمیر بیت الله مهمتره خیلی از عقل کار بگیریم این واقعا تا اون حد باید تخریم میشه لعنت به حد لانت بسیده ان این هم دلیلی که من میگم که کار علماء تصمیم گرفتن داخل شهر شما اشتباه نموده من خودم جز هر او نیستم نه این ورم نه اون ورم من یک در این مسجد بودم نه جز مشور دهنده ها بودم قلب خود من اینو رو میخواد جلسی باشه قلب من این چیز رو میخواد جلسی باشه. اما دلائل اینان دلائل اینه حالا این که برای ترک واجبن نشه این دلیل هست اما جهت بعدی آیا خود جلسه ثبوت داره ثبوت نداره بله گفتم دیروزن داخل اون سخنرانی دیروز ما گفتن خود جلسه اسناد داره جایز هست جایز کجا هست دلیل خود از صحیح بخاری برهمی حدیث هم اعتراض کردن از یه جلسه ذکر اثبات میکنی اون جلسه داخل صحیح بخاری آمده میشینند تصمیح میگن چرا الفاظ بخاری خوب گوش نمی کنند در دیروز هم گفته امروز هم میگن در اون کلمات به این صورت آمده یه مجدون که بزرگت رو تعریف میکنند یک گروه با همینشون چکار میکنند؟ از الله تعریف میکنند الله رب العالمین این نشست دوست داره اما این نشست حالا میشه حد جواز حد جواز همین ایک نشست داره پس کاری میکنن در جلس شد کار تا اون حد جوازش مشکل نداره چرا می خواهد رو مقابل هم دی قرار بدن با افقاد کوت خوشکیده خودشان میگن که در مقابل شیخ الحدیث حسابه در مقابل شیخ الاسلام حسابه مرد حسابی باید خوب درک بکنه حرف و حارو گفتن جواز اینه شیخ الحدیث حفظه الله شیخ الاسلام حفظه الله بخواهد این کارو دارن اون جوازشه. از حدیث میگیرن جواز داره برای خود جلسه. اما اگر لازم بگیرن بی بدرگیر میشید حالا بپرسید از شیخ خلا آیا جلسه لازم میگیرفتند جایزه. اگر نرفتیم باید درگیر میشیم حالا بیچ میگه جایز میگه جایزه برو حالا مستحبه سواب داره نه او همچین نفاقوای رو نمیده هیچ کس نفاقوای رو نمیده. پس اصل و نباید مقالات بکنی. اصلی خود مسئله همینه جوازش ته اون حدیث هست. اما چون که لازم گرفته بیشه اختلاف درست میشه بخاطر لازم لازم شد بدعتی میشه لازم دیدی بدعت و بخاطر اختلاف اون دو تا حدیثی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله بخاطر اختلاف بیت الله تعبیر نکردند و بخاطر لازم گرفتن ترکی اعتقاف کردند اینا دو تا حدیث صحیح بخاری هیچ جای انکار هیچ کس نمیونه اما کسی که علم داشته باشه اونا علم دارن جای انکار چیزی دارم میگم همین چیزو دیروز هم گفتم اما دیروز چون با هم ایجا گفتن خیلی غوغاها دارم میکنن فقط دائی دوزه ها رو خراب میکنی ما بازا از موضع خود ما کوتاه نمی چیزی گفته باز هم میگم و صحبت همینه از هر عالمی که پرسید همین چیزو شما باز هم میگی اما خواهشان خودتان جرعیس نکنید کاشناس مسائل شرعی نباشید که من قال فالقرآن غیر علمین فاساوف اختها می کسی که بدون علم فتوه بده میره جهنم از خودشون درست نیکن از خودتان پس هر اطا جدا جدا هستن کا علماء از اون حدیث و این اختلافات ایجاد شروع از این حدیث پس هر اطا موجه خودشون وجود دارند